ینده فریده هامد این داستان زهاک ماردوش سلام و درود به دوستان جوان و نازنینم با قسمت دیگری از قصه‌های شاهنامه ادامه داستان زهاک در خدمت شما عزیزان هستم در قسمت قبلی داستان فرمانروایی و چیره شدن زحاک بر ایران و ستمی که به مردم ایران زمین وارد میکرد رو با هم مرور کردیم امشب شما را دعوت میکنم به ادامه این داستان این رسمت خواب ناگوار زرهاکه روزگار ظلم و ستهم زحاک هم این طور سپری می شود. تا اینکه شبی از شبها زحاک خوابی عجیب و ناگواردید و در عین اون با داد و فریاد از خواب پرید و نفس نفس زنان نگهبان رو صدا کرد و از اونا خواست تا تمام خواب گذاره یعنی کسایی که علم تعبیر خواب رو در اون روزگار بلد بودن به همراه خوابگزار اعظم در قصر حاضر کنند خوابگزارا که از دستور بیموقع زحاک تعجب کرده بودند سراسیمه خودشونو به قصر رسوندن زحاک با رنگی پریده روی تخت فرمانروایی تکیه زده بود در حالی که لبش رو دندون میگذید نگاهی به خوابگزار انداخت خوابگزار ازم جلو آمد و با تعظیم و عدای احترام گفت سرورم چی شده که انقدر پریشون هستید؟ میتونم علت حضورمون رو در قصر بدونم؟ زحاک آب دهانش و فرو داد و گفت خواب ناگواری دیدم که الان تعبیرش رو از شما میخوام خواب گذاره ازم دستش رو برد روی سینه و گفت بفرمایید زهاک در حالی که به سنگ فرش قصرش خیره شده بود گفت در خواب دیدم که سه مرد جنگجو با خشم به سوی من اومدن و یکی از اونا که بدنی قوی و اندامی درشت داشت با گرزی که سر شبیه سر گاو بود به سر من کوبید و بعدش دست و پای منو با تنابی بست و منو به درون یک قاره تاریک و سیاه انداخت تعبیر این چیزایی که دیدم چیه تمام خوابگزارها با چهرهای حیرت زده و مبهوت به زحاک نگاه می و حرفاش رو گوش می پس از تمام شدن سخنان و حرفهای زحاک همگی از ترس سرشونو رو پایین انداختند و ساکت شدن زحاک با خشم پرسید چرا ساکت شدین؟ یعنی تعبیر این خواب اینقدر سخت و غیر ممکنه؟ اگر همین الان تعبیر این خواب رو ممن نگید دستور میدم همتون رو گردن بزنن اما خوابگزارا که همه تعبیر اون خواب ناگوار رو میدونستن؟ بازم خاموش موندن و جرات نداشتن حقیقت رو به زحاک بدن چون این طبیعت آدمای مستبد و شیطان صفتی مثل زحاکه که حاضر نیستن با حقیقت روبرو رو بشن زحاک رو به خوابگذار اعظمش کرد و گفت تو چرا لال شدی؟ بگو تعبیر این چیه که من به زودی به دست یک جوان جنگجو از بین میرم آیا این درسته؟ خوابگذار با ترس و لرز فراون گفت سرورم برای تعبیر همچین خوابی احتیاج به مشورت و همفکری داریم به ما سه روز مهلت بدین تا حقیقت این خواب رو براتون پیدا کنیم و خدمتتون عرض کنیم زهاک با یک پوزخند نگاهی به خوابگذارا انداخت و سری تکون داد و قصر رو ترک کرد سه روز از این ماجرا گذشت و روز چهارم خوابگزارا از میون خودشون کسی رو انتخاب کردند که مثلا هوش و جرأت بیشتری از بقیه داشت و اونو به حضور فرستادن. خواب خوابگزار که سفیر بقیه خوابگزارا بود به نزد زحاک رفت و بدون هیچ مقدمه گفت سرورم این دنیا همیشه گی و پایدار نیست هزاران هزار نفر قبل از ما اومدن و رفتن که دیگه الان هیچ نام و نشونی از اونها نیست ما هم یه روزی میریم و نسل ما از بین میرو و نسل دیگه ای جامون میاد باید بدونین که اگر اسب آهنی هم داشته باشید و یا قامتی به بلندی آسمون بدون شک یک روزی باید از این دنیا دست بکشین تعبیر خواب شما هم همین حرفاییه که من عرض کردم خدمتتون همونطور که خودتون هم شاید پی برده باشین به دست جوونی به نام فریدون از تخت فرمان رواییتون به زیر کشیده خواهید شد زهاک غضبناک به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه پرسید اون جوون کجاست و الان چی کار میکنه؟ پابگذار شوب دستی رو که توی دستش بود جا به جا کرد و گفت نه ترسین مطمئن باشید که فرصت زیادی هنوز مونده اون جوون هنوز اصلا به دنیا نیومده جهاک با عجله پرسید پس اگه هنوز به دنیا نیومده یعنی من فرصت از بین بردرش رو دارم و هنوز دیر نشده قاب گفت، سرورم درسته اما خیلی باید مراقب باشید. زهای پرسید، اما چرا اون جوون باید گرزی به شکل سر گاو داشته باشه و با اون به من حمله کنه؟ مگر از من چه بدی دیده؟ قاب گفت، پدر اون جوون اسمش آبتینه که شما پدر اونو میکشید و مادرش اونو به دشتی میبره که گاوی عجیب و مهربان به نام برمایه توی اون دشت در کنار پیرمردی زندگی میکنه مادر اون کودک رو به پیرمرد میسپره و راهی دهکده میشه و اون کودک که فریدون نام داره چندین سال از شیر اون گاو تغذیه میکنه تا به جوونی برومند و قوی حیکل تبدیل میشه در نهایت اون گاف هم به دستور شما کشته میشه فریدون در جوونی به خونخواهی پدرش بلند میشه و به سوی شما حمله میکنه و اون موقع است که دیگه کاری از شما بر نمیاد و مرگتون فرا میرسه زهاک که با دهان باز و چشمایی از هدقه بیرون اومده به حرفهای خوابگزار گوش کرده بود بدون اینکه حرفی بزنه از جاب برخواست ولی هنوز یک قدم بر نداشته بود که از هوش رفت و نقش زمین شد خب دوستان این بخش هم به آخر رسید ادامه داستان زحاک و ستمگریهاش و سرنوشتش رو در شبهای آینده با هم پی می‌گیریم. براتون آرزوی روزها و شبهایی سرشار از شادی شادکامی تندرستی و بهروزی میکنم روز روزگار کام